اللهم صل على فاطمة وأبيها أبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأولي محمد معجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم طب المعصومین صفحه 163 روایت دوم عن النبی صلی الله علیه و آله علی و سلم الذی انزلت تا انزل الشفاء همون خدایی که درد دو بیماری و یا بلاهایی نازل میکنه همون خدا هم شفا نازل میکنه. یعنی درمان بیماری و بلا به گونه ای که برگشت پذیر نباشه دیگه برای شخص تا آخر عمرش اون بیماری عاد نکنه اینه میگیم شفا یعنی درمان به گونه ای که برگشت بیماری احتمالش هم نیست تو بحثای معنوی عرفانی اخلاقی و رفتاری اگر افراد بشر رفتارهاشون کرداراشون عمل کرداشون گفتارا در چارچوب اسلام ولایی قرار بدن یعنی گوش به فرمان ولایت حقه باشن بعد از تکلیف مداری و وظیفه شناسی عمل به وظیفه کنن اینجا شفاق ربانی و شفاق رحمانی و شفاق ولایی برای تک تکشون حاصل میشه. اما اگر به جای تکیه و اعتماد به خدای قوی عزیز به قرب و شق یا بی این آن تکیه رو اعتماد کنم و توکل بر خدا رو ترک کنن دوچار ضعف، و سستی و کرخی و سپس ترک اصول ارزشی میشن و اگر توسل به چهارده معصوم داشته باشند همیشه در اوج عزتن و باشته در درجات دارن مخصوصا درجات ایمان. اما اگر ترک توسل به 14 معصوم کنن رو به ضعف و سستی و تنبلی و کاهلی میارن گرچه ممکنه برای دنیاشون و حب دنیاشون بسیار زحمت بکشن که دار فانیه چون مسافر حقیقی و واقعی و هر روز برای هر فرد یا هر شخصی ممکنه موت حاصل بشن و از دنیا بره چون که مسافر واقعی اما برای دارالقرارش القرارش خوبی نداره زاد و و توشه مناسبی نداره چون متوصله به چارده معصوم نیست ترسل به چارده معصوم یعنی توسل به امام خوبیا به اصفه حسنات حالا رفتارهای مثبت، اخلاق شایست احیاء سنت رسول الله و مانند این رفتارهای مثبت، علم و یقین بدون هیچ شک و شبهی در اصول عرضشی پس هر کسی که شفاء رحمانی میخواد و شفاء ولایی میخواد باید در صدد اصلاح خودش بر اما در بعد جسم مثلا مثلا هر بدنی در طول عمرش بیش از دیویس ویروس وارد بدنش میشه حال اگر کسی دوست داره که ویروس های مزرق او رو ضرب فندی نکنه مثلا ویروس ناشی از سرماخوردگی عادی ویروس ناشی از سرماخوردگی شدید ویروس آنفولانزا که آبریزش بینی توان با درد دارد یا ویروس آنفولانزای پیشرفته که میگیم بیماری سارس یا مسائل دیگر مثل تبع کنگو مانند اینها خب اینجا باید مسائلی رو از حیث بهداشت فردی و اجتماعی رعایت کنه مثلا قبل از وضوح بینی خودش رو با آب بلنه بشوید تا ذریب آلرژیک کمتر شه. دوم مؤمنا با محلول آب سرکه بخور آب سرکه شستشو بده حلق سینوس ها و پشت حلقشون پس با محلول آب سرکه قرغره کنه یا بخور آب سرکه استنشاق کنه کی پبینش و حالت حساسیت این قسمت ها و خلط چسبنده پشت حلق و نزله اینا همه چی میشه؟ خوب میشه اگر بخواد هیچ وقت تب نکنه و افونت داخلی نگیره اینجا صوبها اصل رقیق شده یه مثلا با شیر تازه گاب کمچر یا با آب بلم یا با آب سرد عادی اصل رقیق شده صبحگاهی بخوره و آب سیب شامگاهی آب سیب تازه از سیب رسیده شیرین اینا هم هر شب بخوره ضعف بانیه هم داره بیتونه این آب سیب تازه رو با اصل رقیق کنه و بخوره یه کم مثال و ستون زدن. مخصوصا کسانی که خودشون یا فرزندشون دچار تشنجه انواع تشنج و سر تا به پنجاه نوع میرسه و اگر بیمار، تب و یا عفونت داخلی درو تکرار بشه هر بار تشنجش از بار قبل شدیدتر میشه پس به عنوان یک واکسن طبیعی و داروی طبیعی از سر رقیق شده صبحگاهی و آبسیب شامگاهی را تو جیره قضایی این بیمار بگذار نگذار تشنج و در اون تکرار شده و بعدی مؤمنان عن النبی صلی الله علیه و آله علی و سلم اون مطلب قبلی هم اگر بخواین تحقیق کنید این انزل شفائه یازده بار در سیدی نور سوانیم جامال احادیس آمده اون مواردش رو نگاه کنید. روایت بعدی من استقل به رأیهی فلا یتداوا فرب دوائن یورف الدائن 23 بار در روایت شیعه یورف الدائن آمده اون رو نگاه کنید. اما این روایت من استقل برائه فلا تداوام این روایت در کتب اهل تسنن هست من استقل برائه فلا یتداوا هر کسی که استقلال رأی داشته باشه به نوع منفی یعنی اگر متخصص متعهد نیست خود درمانی داشته باشه خود درمانی غلط خود درمانی ضررش بیشتر از اصل درمانه یکی گاهی شخص متخصص هست ولی متعهد نیست یعنی عبد پوله تا پول داری رفیقتم چنین را حالا اینجا این تخصصش هم برای خودش حجاب اکبره هم مزر برای بیمارانه چون این نیت خیر ندارد پول پرستیش استموار دارد. تسا‌ف فرمودید اینم به درد نمید. یه بار دیگه شخص متعهد هست، اما تخصص لازم در تشخیص بیماری و درمان به نحو احسن که با کمترین هزینه و بیشترین اثر مثبت رو دارو روی بیمار بگذاره و اثر وضعی و اثر بد دارو بسیار کم باشه. یعنی تخصص در دارو و تخصص در درمان نداره اینم به درده میخواد. پس ما در شاخهای مختلف علوم پزشکی و داروشناسی متخصص متعهد میخواییم من استقل به رأیه هر کسی که خود سرانه عمل کنه مثل کسی که جاهل و قافله خود درمانی غلط یا اینکه خودسرانه عمل میکنه مثلا میگیم آقا این دارویی که گفتی اشتباهه میگه من دکترم یا تو خب باباجون ما که تو این که بد نکنیم شما دکتری ولی آیا دکتر حواس پرت باید تجویز دارو کنه یا داروخانه یا دارو ساز حواس پرت باید نسخه بپیچه یا نسخه بده که این اتفاقا مکررن در جای جای جهان رخ میده و حال بیمار بسیار بدتر میشه ای گری یا الوات مثلا دو تا نامحلمه میگن میخندن مطلق میگن همجان داره نسخمی میزه عدد فراد چیه داخل خارج کشور الله تو بحثیم اصول به اسلامی یک روز در ضمن همین روایات نظر شیعه اصناعشری رو برای شما در دو صفحه بیان میکن این باشه او سبب پس تو مباعثه خودمون من استقل به رأیهی فلای و حاصل نمیشه بهبودی حاصل نمیشه چه بسا که دارویی که خود سرانه مصرف میشه یا قافلانه مصرف میشه یا خود درمانی قلطه یا متخصص غیر متعهد میده یا کسی که تعهد داره ولی تخصص نداره تجویز میکنه چه بسا این دارو ایجاد درد و بیماری مضاعف میکنه و رب دوائن یورفد دائه این یورفد 23 بار تو روایتشی اومده اما کل این روایت مال اهل تسننه گاهی مؤمن رفتارهای منفی با خود و یا با دیگران باعث ایجاد بیماری میشود مثلا آب آلوده بخورد یا در اختیار دیگری قرار بده یورسل جزام مثلا موی بینی رو نطف کنه از ریشه بکنه یورسل جزام مثلا گایی رفتار منفی یا با دیگری رفتارش منفی باشه باعث بیماری مو خوره میشه یعنی هر تار موش چند تا تار میشه سپس به پیاز مو میرسه و پیاز مو رو از بین میبره یکی از علل بیماری مو خوره و بیماری جزام الاسنان خوره دندان و خوره مو چیه؟ اینکه شخص یا اشخاص داخل حمام سرشون رو شونه کنن یا اینکه مسواک بزنن چند بیماری میاره یکیش همینه جزام شعر. و جزامل اصنان این اینم قابل عرض داخل خارج کشور پس اینکه که حموم سر خونه هست این دلیل برای این نمیشه که شما شونه تو بری تو حموم شونه کنی سشوارت ببری تو حمام حالت بدی بموت نه از اشتباهاتیه که آسیب به خودش آسیب بچهش آسیب به همسرش میزنه مثل اینکه جا قهتی باشه خیلی سلام علیک که خصوصی تو حمام کنه خب کلی آب میشه چقدر تو رو یاد دانیم که استلقا در حمام نباشه؟ حالا این کلماتی که خدمتون گفتم در حمام شانه نکنید در حمام شانه نکنید زیرا مو خوره می آورد در حمام مسواک نزنید که خوره دندان می آورد با اینکه شخص خلال بعد از غذا جایی که آب هست انجام میده مسواک قبل از وضوع انجام میده مسواک قبل از خواب انجام میده در 24 ساعت بیشتر از یک بار از خمیر دندون بیشتر استفاده نمی کنه. آزمایش هم رفته آزمایش کامل کلسیون فوسفور بدنش هم کم نی حالا اوست دندوناش خورد میشه شه می به خاطر این رفتار منفی با خودش یا با افراد کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده که تو بحث مهندسی اصول اجتماعی یا جامع شناسی مطره رفتارت با خودت منفیه و نسبت به ناموسه یا نسبت به اولادت منفیه کپیرایت کرکرانه از قرباشق که خودشون در چاله های فرهنگی موندن خواهشون نمیتونن جمع جور کنن حالا ما کپیرایت کرکرانه از قرباشق کنیم به صورت ترجمه کار غلط را تکرار کنیم این فرمایش گهربار امام صادق علیه السلام ببینید در بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد هفتاد سه چاپ اسلامی تهران جلد هفتاد صفحه هفتاد و یک روایت طولانیه بعد حضرت میفهم وید برحضر باش و ایا که و تمشطه فی الحمامه ف اینهو الحمام یورث و الشعر و ایا که و سوا که ف یورث و وبا الاسنان بقیه چه کنیم پس نگو حموم خودمه بچه خودمه دست خودمه شونه خودمه اختیارش با خودمه جاهلانه و قافلانه پف پف و فیگور نگیم پرستیجت کاذره بلکی فیگور نگیم کارم و قلائیم علم و انجام بده مسئولیت پذیر باش و مسئولیت تو به نهبه احسن انجام بده نه دست و پاچه بی برنامه از برنامهی که معصوم برات قرار داده تبقیه اون برنامه عمل کن چون معصوم خوزان علمه تبقیه او عمل کن به مشتی فرضیات کورکورانه از قرب و شرق. یا من درابردی از خودت عادات زشت خودت و اینو اون عمل نکن آسیب می‌بینی؟ آسیب هم به دیگران میزنین روایت دیگر هم از اهل تسنن میخونی تو کتاب شیعه نیست فقط علامه مجلسی این روایت رو در بحار آورده بقیه کتاب شیعه نداره این روایت هم از اهل تسننه عن النبي عن در درداء قاله ان الله انزل الدَّاءِ وَدَّوَاءِ و جعل لکل دواء دوائن فتداو و لا تتداو به میگه تحقیقا خداوند متعال نازل کرده درد و بیماری و داروی درمان هر درد و بیماری رو از این داروخانه طبیعت کشف کن و استخراج کن و به کار بگیر با دوزج خاص مصرف خاص در مدت زمان خاص و برای هر دارو درد و بیماری داروی خاصی هست پس خودتونو باید با اون داروی خاص مداوا کنید هیچ وقت مداوای با حرام نکنید هیچ وقت مداوای با حرام نکنید مثلا بعضی هستند در داخل یا خارج کشور ببخشید لفظام یکم بد میشه. بعضی ها هستن در داخل و یا خارج کشور مثلا کم کمکاره سود میپره میره گمبلان گوسفند میخوره یعنی بیزت این گسفن خب بابا با با بیزت این گسفن کیسه منی این حرفا اینا خوردن منی حرامه بیزه گسفن خوردن حرامه در حرام شفا نیست آدم که نباید عبدالبطن باشه که حرام لغمگی کنه و حرام بخوره بعضی ها در داخل یا خارج کشور در جای جای جهان از این بدتر بعضشون برای اینکه پایین تنور مسائلش مسائلشو ترمیم کنه میره یک جفت به تخم سگ دریایی نهاندرتال که از سواحل کشور کانادا هست میگیره میخوره قیمتش بین 10 تا 20 هزارتان این چه حماقتیه؟ این هم دوتا یکی نیست به این افراد بگه بابا جون او حیوان از طب اساسیه رو نمیخوره تو انسان دیگه از او باید پستر باشی آدم اگر جون شناسی هم میدونه باید جون ورشناس باشه نه جون ورشناس بیعقل بعضی افراد دیگه هستن مومنا مثلا کارهای دیگر میکنم ما کارهای کثیف رو از هیچ کس قبول نداریم و دارو رو از طریق حرام نخواهیم داد پس شما فهمیدید اگر کسی مثلا بیزتینش کوچیک بود و ازدواج قانونی یا شرعی کرده خب حلال بخوره این همه ماشاءالله درخت خرماست شکوفه هست حالا شکوفه درخت خرما که عربا میگن طلع تدستدار لام عین کسی که بیزت اینش روز روزی یک قاشق چای خوری شکوفه خورما و یک قاشق پلوخوری خوری اصل بخوره اینش بزرگ میشه و سالم چون که مبتلا به در داخل و خارج کشور این مشکل هست و در سالهای اخیر میزان ناباروری در ایران زیاد شده و در کشورهای مختلف و ضریب ناباروری آقایان بیشتر از حضرت خانم هاست. یه مقدار توضیح می علل ایجاد ناباروری در زن و مرد چون بعضی چیزا مصرف می که عقیمی می آورد. شخصی که ممیز و بالغه از پسر و دختر ازدواج کرده یا غیر ازدواج کرده اینا رو بخوره ها عقیمی می آورد یک خوردن کافور دو خوردن شیر خشک. سه خوردن نخدفرنگی که الان مت شده تو کپی ها کورکورانه کرکرانه از قرب و شرق میکنن خوردن نخدفرنگی عقیمی می آورد بعضی دکترهای مؤمن ما مثل دکتر حسین میر حیدر که بیست سال با دانشمندهای اروپایی و کانادایی و آمریکایی بحث کرده و ما حاصل تحقیقاتش رو تو کتاب معارف گیاهی هشت جلد آورده تو جلد دوم و جلد ششم مؤمنم ها این بحث مطرح کرده که کشور چین و کشور هندوستان از این نخود فرنگی هرمونی تهیه میکنن برای ایجاد ناباربری چونها سرریز جمعیت دارن شما که جمعیتی نداری پس نخدفرنگی هم یکی از عواملیه که ایجاد عقیمی میکنه چهارم میوه قازیاقی که در منطقه آذربایجان غربی و شرقی میگن اینم ایجاد عقیمی میاره میوه نخورین علل ایجاد ناباروری در زنان علل مشهورش یک کیست تخدان دو تخدان پولیکیستیک یعنی پی سی او سوم فیبروم فیبروم جدار رحم رحصه فیبروئیدها ها حالا پیان باشه یا پاپیلون باشه دیگه سیدی بیماری های زنان که توضیح دادم و کتاب انگلیسیا دارت المعارف فزشکی خانواده مال بریتانیا رو اونجا حاشیه زدم سیدی رو بگیریم گوش کنیم اونجا رو توضیح بیشتر دادم چهارم چسبندگی لوله رحم پنجم ناراحتی دهانه رحم ششم، سرطان دهانه رحم هفتم، سرطان رحم هشتم مصرف قرص ضد حاملگی نهم بستن لوله رحم دهم کاهش هورمون جنسی زنانه استروژن و پروژستران یازده خستگی جنسی شدید تو بحث روانشناسی بالینی دوازده تخمدان کم کمکار سیزدهمی طول عمر تخمک کوتاه سود تبدیل به جسم زرد یا اول میشه چارده تخمک نارسه به حد رسیدگی نمیرس پنزدهم هم های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی اینا باید درمان بشه 16، به از این مسائل هست مثلا توی بامباران های فوسفاری یا توی بامباران های اورانیان زعیف شده یا توی بامباران های اطومی هیدروجینی یا نوترونی و دو که این از فاصله 16 کلومتی با اونوره تا 16 کلومت که همه پود میشن خاکستان میشن چیز ازشون نمون از 16 کیلومتر به اونور تا 32 کیلومتر مومنان انواع سرطان های خون سرطان های پوست و نازایی و ناقص الخلقه اینا شای و فراگیر میشون. این هم مال هیفته همی حالا درمان های مختلف برای بیماری های مختلف زنان مثلا اگر کسی اگر خانومی تخدانش ضعیف باشه تخمکش ضعیف باشه طول عمر تخمک کوتاه باشه کیست تختان داشته باشه. حالا همه این چارتا رو با هم دیگه خوب کنیم بدون جراحی بدون استفاده از قرصای شیمیایی. یک هر روز هفت برگ کاسنی بخورم تو روایات شیه می فرماید به بذار علامه نمازی در کتاب مستدرک جلد نه مستدرک سفینت البحار جلد نه باب هندبه روایی مجرد هندبه اونجا رو آورده هر روز هفت برگ کاسنی اگر تازش بود خوش بود یه قشو مرب بخوری پودرش عرقش بود بدون اوسانس یک استکان عرق کاسنی مصرف دومین کاری که باید انجام داد مخلوط پودر سعلب مخلوط پودر سعلب به اضافه زعفران به اضافه مشک ناف آهو این ستار رو پود کنه قاطی هم کنه هر وقتی که سلام علیک خصوصی داره با شوهر خلالش به همراش داشته باشه یعنی داخل واژن و محبل بگذاره کتابای تخصصی گیاهی داره به احتمال قوی در اولین مقاربت بچه دار میشه خب معلوم شد مؤمنان یکی که گفتیم خب. مطلب سوم باقلای هندی که ساییده شده این رو با شیر انسان مخلوط میکنیم و با خودشون شیاف بردارن عنوان شیاف داخل رحمی این داروی دارو سوام داروی چهارم کاهو مصرف کاهو بدون سس به همراه نهار و شام بدون سس به همراه نهار شام پنجم مصرف سبزی کرپس شبها بعد از شام یا به همراه شام شیشام استفاده از گل استخودوس به مقدار یک قاشق چایخوری پودرش در 24 ساعت بار این برای اینکه که کیست ها و تومورهای های احتمالی رو خوش کنیم و تعداد و حجم و وزنش رو کم کنیم هفتم میتونید از قرص شیمیایی کلو میفن تو بحث زنان ها زنانی که تختان زعیف دارن تخمک ضعیف دارن طول عمر تخمکشون کوتاهه و یا کیست تختان دارن حالا برای اینکه ایجاد حاملگی بشه در این نوع میتونید از قرص شیمیایی کلومیفن استفاده کنید هفتم اگر خانومی مثلا اضافه وزن دارد و اضافه وزنش چهل بیبیون به بالا است مثلا 20 کیلو اضافه وزن داره مثلا همچنین فرض کن دیابت هم دارد دیابت هم داره بیماری قندم داره چه به نوع دیابت نوع یک قند بیمزه چه به نوع دیابت نوع دو قند شیرین. حالا اینجا دوست داره حامله هم دشه ازدواج قانونی شرعی کرده اینجا برای کاهش وزنش و همچنین کاهش قند خونش چکار میکنیم؟ قرص شیمیایی متفورمین متفورمین میدیم که تو مراکز تخصصی نازایی میدن هفته اول هر 24 ساعت یک هفته دوم هر 24 ساعت دوبار هر 12 ساعت یک هفته سوم هر 8 ساعت یک یعنی هر 8 ساعت یک عدد هفته چهارم یکی کم میشه 24 ساعت دو هر 12 ساعت یک هفته پنجم یکی دیگه کم میشه شب 24 ساعت یک به صورت سیکل و نیم سیکل هویت این قرص شیمیایی متفورمین رو مصرف کنه تا ان جواب آزمایشش مثبت در بیاد از ایسه بارداری علل دیگه هم داره چند تا نقطه مثل حالا علل ناباروری در مردان که گفتیم در مردان شایه تر شده در داخل خارج کشور علتاش چیه؟ یک گای مومن ها یعنی واریس وریدهای بیزه واریس وریدهای بیزه آیا بار سنگین برمی داره؟ آیا یک جا زیاد می آیا قلزت خونش بالاست؟ تصالب فهمونیم؟ حالا پیش متخصص دستگاه تناسلی می مال مردان ببینه این واریس واری کسلش علل زمینه ایش چیه؟ دومین از علل ناباروری در مردان هیدروسله یعنی تجمع مایات اضافی بافتی بین بیزه و پوسته بیزه این اینها هم مؤمنا که با آمپول خاص متخصص این مایه میکشه بیرون یا قدیمی ها با زماد آردجوه سبوستاد که چند شب می گوشتن شب تا صبح زماد باشه مؤمنا ها این رو چکا می تخلیه می سوم، سوام های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی آیا چسبندگی مجرا داره؟ آیا بیماری سوزاک داره؟ و بقیه مصدره گاهی نه عفونت مرنجیتی داره که نوع ای ای نوع بی چه واگیرش چه غیر واگیرش با آزمایش مایه نخایی نوع مرنجیت مشخص میشه که از هیپ کمر مختصری میگیرن گاهی میبینیم مومنا در دوره ممیزی یا در دوره بلوغ بیماری اوریون گرفته و در صدد درمان بر نیامده یکی از عواملی که ایجاد عقیمی در پسران مردان میکنه اینه که بیماری اوریون بگیره و خودش درمان نکنه مخصوصا در دوره ممیزی و بلوغ مطلب چهارم اینا سه تا مثال بودن برای عفونت ها پس یکی از علل ناباروری در مردان و عقیم شدن چیه عفونت ها گاهی عفونت های دستگاه تناسلی گای عفونت های مجاری ادراریه گایی هم افونت مننجیده و گایی هم افونت ناشی از بیماری اوریونه که خودشو درمان نکرده مطلب چهارم گاهی ناباروری در مردان و پسران در اثر زربه یا سقوط یا تصادفه به اصطلاح منطقیون میگه موضوع بین را بعد کاراته کنفو ساواته بکس چینی یه لگه زده به هشتی مردم حالا ممسوح شده این آجیلج همه در به داغونا ها اینجا دیگه چی سیفو یا سقوط کرده از ارتفاع یا از صخره یا از کوه و با اندام تحتانی خورده زمین خله و لورده شده یا اینکه تصادف کرده مؤمنات تصادف فهمید مطلب پنجم کسانی که رانندگی های طولانی می کنند و اینکه نظر اصول طب کار بعد از هر دو ساعت کار صحیح باید ربع ساعت تا 20 دقیقه به خودشون استراحت بدم. حالا پشت فرمان میشینه میگه من راننده با تجربه ام فهمینه 6 ساعت 8 ساعت یکسره رانندگی میکنه کسانی که رانندگی های طولانی میکنن اینها هم دچار عقیمی میشن در مردان ششم جراحی بدنش مناسب نیست یا جرواهش جراح ماهری نیست جرواه هست ولی تازه مدرک گرفته تجربه کاری نداره میخواد یه چیز دیگه جرواهی کنه یه چیز دیگه عوضی جرواهی میکنه میخواد اینجا رو اینطوری کنه میزنه اون مسیری که باید اسپرمای شوهر بیاد قطع میکنه یا ممسوهش میکنه حالا اون مسیر اسپرمای شوهر نمیاد پس غلط این شیشام جر موبایل ها، های همراه، وقتی که تماست بیش از یک دقیقه است، یکی از عوامل عقیمی در مردان، تماس های طولانی، ارتباطات طولانی با تلفن‌های های همراه، هم. توزه دقیقه، 20 دقیقه همجور داره، بلبلی زبونی میکنه، لفوازی میکنه، پشت تلفن همراه، نه اگر می‌خوای حرف زیاد بزنی، با تلفن سیمی حرف بزن، موبایل ها بحث استراره نظیر بی سیمه نظیر ماکروهیه نظیر بشقابه ها، های مهوارعیه تماس استراریه تماس باید زیر یک دقیقه باشه اگر تماس هاتون طولانی باشه هم تومورهای در قسمت های حافظه اصلی که پشت لوزه های ای هم یکی از آثار بدش روی قدرت داخلی پایین بحث بیزه در مردم دوچاره عقیمی میشین چون برای این مسائل چهار قده در کار مهمنا از جمله قده هیپوفیز مغز و قده هیپوتالاموس مغز و این امواج مقناطیسی ناشی از اطراف موبایل ضربه های جبران ناپذیری میزنه روی این دو قده داخل مغزتون پس تو کتاب تخصصی هم هست رارندگی طولانی جراحی موبایل ها که تلفن‌های های همراه هم. هشتم کسانی که مصرف داروهای هموترافی میکنن یکی از عوارض سوء داروهای هموترافی چیه؟ ایجاد عقیمی در مردان و پسرانه میرن آمپول بزنن عکس رنگی اینا بگیرن؟ اثرات تخریبی داره یکیش هم چیه؟ ایجاد عقیمی در مردان مطلب نهم بعضی ها کپی رایت کرکرانه از قرب و شرق میکنم میگه حجقا میگم بله میگه میخوام حمام سونا بگیرم حجقا میخوام هممم جکوزی بگیرم بعضی عدت فرم چند تا بیماری میاره عمر آدم کوتاه میکنه اینها یکی از علل ناباروری در مردان تو کتاب های بیان شده حمام های سونا یعنی حمام اتاق بخار خشک و مرتوب و همچنین جکازین یعنی استخر آب تگریه بیرون اینجا داغه داره میجزه جزده می پره تو استخر آب تگریه که یخ میزن. چه قلط کاریه که مد شدن در داخل خارج کشور حالا یکی دیگه هم موامنا قشن برو استخر شنا کن یا رودخونه مطبوب شنا کن یا چشم سار شنا کن دو. اما اینکه که بیایی هم پول خرج کنی هم جون بدی هم عقیمی بیاره این خلاف علم و یقینه خلاف عقل خلاف دینه هر بشری خودش رو دوست داره و برای بقا سلامتیش باید تلاش کنه نه اینکه که فراش یا کارهاش برخواسته از جهل و قفلت باشه یا دیکته دشمنان باشه مم. که هم اصل سرمایت هم پولت و هم جونت هر هدر بره هم خودت رو کنی هم دیگران رو به زایه شدن بکشونی این هم مطلب نهم پس یکی از علل ناباروری در مردان و پسران چیه؟ هممام های سونا و جکوزیه مطلب دهم یکی از علل ناباروری در مردان و پسران پوشیدن شرط تنگ شلوارک تنگ شلوار تنگ لباس تنگ زیرپوش تنگ که مد شده در داخل خارج کشور تنگ چسبان بدن نما می پوشم خرابی حالا ما تو یه خرابیش داریم بحث میکنیم و اون چیه ایجاد عقیمی اینها هم حتی تو کتاب های تخصصی اومده کلن لباس های چسب و تنگ به بدن هم ناراحتی قلبی میاره و هم ایجاد ناباروری میکنه بفهم چقدر تو رو آیاتشیه کرده از پوشیدن لباسای تنگ قرباشر خودش توش مونده وقت ما بریم فساد قرباشر رو تکرار کنیم چه عمل جاهلانه حالا درمانش چیه مومنا تو بحث نکاح اینا رو آیاتشی نگاه کنیم دیگه درمان ناباروری مردان یکیشو در بین صحبت اول گفتم اگر کسی کوچکی بیزه داره از حیث جنتیکی بیزه چپ همیشه کوچکتر از بیزه راسته این بیماری نیست اما اگر از حد نرمال بیزه کوچکتر باشه میتونی درمان کوچکی بیزه هر روز یک قاشق چای خوری شکوفه خورما که طلعه بخوره و میتونه از عطر شکوفه خرما که عطر طلع یا عطر طائف اونایی که مکه میرن میتونن تهیه کنن یا خود اهل عربستان استفاده کنن جرمان کمبود اسپرم سالم امام صادق علیه السلام و سلام در بهار جلد 66 چاپ اسلامی تهران جلد 63 چاپ بیروتی جدید فرموده تخم مرغ به اضافه پیاز سفید به اضافه این سفیدش از روایات دیگه در میاد تخم مرغ به اضافه پیاز از روایات دیگه در پیاز سفید به اضافه روغن زیتون دو عدد تخم مرغ سفید زرد میز تو مایته یک پیاز متوسط سفید تو یک دو سه یارنده می‌کنه میز روش یک قاشق پلوخوری روغن زیتون هم میریزه بهترین روغن زیتون لبنانیه بعد مال رودبار شماله بعد مال ترکیه بعد مال اسپانیا و ایتالیا اسپانیا ایتالیا اسم در کرده جنبه تجاری داره پس بهترینش لبنانیه بعد مال رودبار شمال شمال ایران بعد مال ترکیه یه قاشق پلو خوری روغن زیتون غیر فرابری شده روغن زیتون خالص بدون آسانس میریزه روی اینا حالا شعله گاز روشن میکنه ستاش با هم هم میزنه میخوره یک روز در میون یعنی هفته ی سه بار ناهارها اینجوری بخوره امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که اینجوری با قول شیرازی ها خاگینه بخوره نه تنها بچه دار میشه، تعداد بچه پسرهاش هم زیاد میشه. به اصطلاح تخصصی ژنوم انسانی تو بحث ژنتیک، برخورد ایگرگ شوهر به ایکس زن زیاد میشه و بچه پسر در میاد. اگر کسی ضعف اسپرم در هنگام لقاح داره یا ضعف جهش اسپرم داره یا بیزش کم در تولید اسپرم مثلاً یا اینکه رفته اسباب اساسیش کارخونه سالم آکبند اما تولید داخلی نداره اسپرم صفر اما اسباب اساسیش سالمه در هر چهار مورد داروش چیه مومن یک چنین مردی و پسری هر روز هفت برگ کاسنی بخوره یا یک قاشو مراب بخوری پودر کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی بدون اوسانس بخوره دوم چیه یک قاشق چایخوری پودر سل... سعلب یعنی پودر گل ارکیده روایات میگه سعلب تو کتابای طب مکمل طب گیاهی هم الटरनेटیو سعلب با سه نقطه لام به آخر یه قاشق چایخوری پودر سعلب رو در نیم کیلو یا 200 گرم روغن زیتون خوب هم بزنه اگر 200 گرم روغن زیتون بود روزی یک قاشق چای خوری اگر نیم کیلو روغن زیتون بود روزی یک قاشق پلو یک قاشق خوری از این مخلوط بخورید یک قاشق مربا خوری از این مخلوط که یک قاشق چای خوری پودر سعد در نیم کیلو روغن زیتون بود اسپرم صفرش کم کم زیاد میشه هر وقت به 100 میلیون رسید بهترین مقدارش در سانتیمتر مکعب بین صد میلیون تا دیویست پنجاه میلیونه به صد میلیون که رسید قدرت ایجاد بارداری میتونه میتونه ناموسشو باربر کنه تصافی فهم این اینم مانی ایلال گنج سرخت علل ایجاد نطفه ضعیف در زن و شوهر چیه؟ ده چیز یک استفاده از قند های شیمیایی خوردنش دوم اوسانس های شیمیای قند های شیمیایی مثل قند و شکر و شنیجات قندنادی و اینا با هر اسم و اسمی از داخل قاج کشور اوسانس های شیمیایی، آب میبای شیمیایی، مشابه های گازدار از داخل قاج کشور سوم ترانس چربی بالا مثل تعدیک مثل کله پاچه مثل خامه مثل سرشیر چهارم کافئین زیاد چای پررنگ چای مونده چای با اسانس چای عطی، شکلات کاکاو، نسکافه پنجم کنسروها کمپوتها، هشتم، هشتم غذای مونده غذای مونده نهم فاست فودها سوسیس کالباس همبرگر پیتزا مرغ کنتاکت دهم استرس شدید نگرانی مستمر اگر شدید باشه جهش اسپرمو ضعیف میکنه طول عمر اسپرمو کوتاه میکنه در زنان کمکاری تختان میاره و طول عمر تخمکو کوتاه میکنه زری لقاح تخمک زن با اسپرمش و در ابتدای لوله رحمی پشت شیپور فالو کم میشه عقیمی در زن اومد رخ میده یه خط بکشیم عواملی که عقیمی می آورد اول مباحثه گفتم چهار چیز بود کافور نخود نخدفرنگی یکیش هم میوه قاضیاقی یا میوه برگ بود پنجابیش هم چی بود که در زمین صحبت گفتم پرتوهای اتمی، پرتوهای اتمی. تو بحث‌های تخصصی پرتوهای اتمی و زندگی پروفسور پیتر الکساندر اینها رو مؤمنان 13 سالگی حسینیه یزدیها و مسجد امام حسین تهران قلهک اینا درس می‌گفت حالا مؤمنان یکی از علل عقیمی در زن و مرد چیه پرتوهای اتمیه گاهی میشه در مراکز عکس‌برداری مؤمنان مثلا رفته عکس دندون میگیره یا عکس از فک میگیره تو عکس گرفتی زود بیار بیرون دیگه اونجا و سه سه چی اونجا نشستی اونجا صحبت میکنی باطاقای عکس برداری زود ترک کنید و عکس برداری هم الکی زیاد نگیریم این اشعه رادیوم و مانند اونها ایجاد عقیمی میکنه یا مناطقی که آلوده هست به بمباران های یا اورانیوم ضعیف شده که این غرب و شرق میریختن بر سر ملت افغانستان و عراق انواع بیمارای سرطانای خونی اینها بچههای ناقص الخلقه و همچنین عقیمی در مردان و زنان میاره و گاهی این غرب و شرق های اتمیشون رو میان در سواحل و یا دریاهای کشورهای دیگه دفن میکنن و یا تو کشورهای اونها دفت میکنن لذا ما به داخل و خارج کشور بارها تذکر میدیم که حرکات و سکنات و رفتارها و کارهاتون جاهلانه قافلانه نباشن چون اگر آدم حواصفت عمل کنه ها عامل اجرائی دست دشمنان میشه خودش هم نمیدونه و به قول خدای متعال در قرآن مجید عظیم کریم، یحسبون انهم یحسنون صنعا خیال میکنم کار خوبی انجام میده و حال اینکه باعث و بانی شد که عمر خودش و دیگران کوتاه شود. امام صادق علیه صلات و السلام که رهبر همه عیان و امام امام های چارگانه مذاهب عربعی اهل تسننه امام صادق علیه و السلام فرمود من اراد البقاء ولا بقاء هر کسی که دوست دارد عمر طولانی با آفیت داشته باشد غذای مونده نخورد غذای مونده خوردن هم عمر انسان رو کوتاه میکنه هم ضریب افونت های داخلی و بالا میبره هم به انواع تومور و کیست های بدن رو زیاد میکنه و هم یکی از علل ایجاد ناباروری در زنان و مردانه سلامات بر محمد و آل محمد آه.